بله عزیزان همراه بودن در مطالعه کلام خدا چه لذت بخشه به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدین یادتونه که وقتی در مورد زندگی ابراهیم مطالعه می‌کردیم خدا با این مرد عهدی بست خدا به اون گفت برکت می‌دهم به آنانی که تو را مبارک می‌خوانند و لعنت می‌کنم کسانی که تو را لعنت می‌کنند در طی قرن‌ها دیدیم که خدا این عهد رو تایید کرده و امروز در مورد ناهوم نبی و نبوت اون بر علیه یکی از بدکارترین و ظالمترین دشمنان قوم خدا مطالعه می کنیم. لطفاً به دقت گوش کنید. چون این درسیه که می‌تونیم از اون در زندگی های خودمون بهره ببریم. این شما و این معلم ما. خداوند این رویا را که درباره نینوا هست به ناهوم القوشی نشان داد. خداوند قیور است و از کسانی که با وی مخالفت ورزند انتقام میگیرد و با خشم شدید آنان را مجازات می کند. خداوند دیر خشم گیم می شود ولی گناه را هرگز بی سزا قدرت او عظیم است و آن را می در گردبادهای وحشتناک و طوفانهای شدید مشاهده کرد. ابرها خاک زیر پای او هستند به فرمان خداوند دریاها و رودها خشک میشوند چراگاههای سبز و خرم باشان و کرمل از بین میروند و جنگلهای سرسبز لبنان تراوت و خرمی خود را از دست میدهند در حضور او کوهها میلرزند تپهها ناپدید میشوند زمین متلاشی میگردد و ساکنانش نابود میشوند کیست که بتواند در برابر خشم خدا ایستادگی کند غضب او مانند آتش فرو می ریزد و کوها در برابر خشم او خرد می شوند. خداوند نیکوست و در روز بلا و سختی پناهگاه می باشد. او از کسانی که به او توکل می کنند مراقبت می نماید ولی دشمنان خود را با سیلابی شدید از بین می برد و آنها را به ظلمت مرگ روانه می کند. اینه چرا به فکر مخالفت با خداوند هستی؟ او با یک ضربه تو را از پای در خواهد آورد به طوری که دیگر نخواهی توانست مقاومت کنی او دشمنانش را مثل خارهای به هم پیچیده به داخل آتش میاندازد، با آنها همچون کاه در های آتش سوخته شده دود میشوند. این پادشاه تو کیست که جرأت کند به ضد خداوند توطعه کند خداوند میفرماید: سپاه آشور هر قدر هم قوی و بزرگ باشد و نابود خواهد شد ای قوم من به اندازه کافی شما را تنبیه کردم اینک زنجیرهای شما را پاره می کنم و شما را از قید اسارت پادشاه آشور آزاد می سازم خداوند به پادشاه آشور می فرماید نسل تو را از بین می برم تا نام و نشانی از تو باقی نماند بودها و بودخانه های تو را نابود می کنم و قبرت را می کنم چون بر اثر گناه فاسد شده ای ببینید قاصدی از کوها سرازیر شده خبر خوش پیروزی را ندا میدهند ای یهودا ایدهای خود را برگزار نما و نذرهای خود را به خدا وفا کن چون دشمن هرگز دیگر بر نمیگردد او برای همیشه ری شکن شده است به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید زمینه بررسی عهد قدیم به کتاب ناحوم نبی رسیدیم. آیاتی که خوندیم نشون میده که نبوت ناحوم چطور شروع شد. به نظر بعضی ها کتاب ناحوم کتاب خسته کننده ای هست. برای اینکه کتاب ناهوم برای شما خسته کننده نباشه، مایلم که بعضی دیدگاه های تاریخی در مورد ناحوم نبی به شما بدم که معتقدم به شما کمک میکنه که بهتری از پیام کتاب ناحوم داشته باشید و بتونید از اون کاربرد شخصی عملی برای زندگی خودتون به دست بیارید. کتاب ناحوم دوباره ما رو به شهر میبره که صحنه موعظه یونس متعصب بود. در 785 قبل از میلاد یونس در شهر نینوا موعظه کرد. همونطور که در بررسی یونس نبی دیدیم، بزرگترین نهضت بشارتی بعد از موعظه این نبی کوچک یونس در شهر نینوا شکل گرفته. وقتی شروع به خواندن کتاب ناحوم میکنید یادتون باشه که حدود 150 سال از زمانی که یونس در شهر نینوا موعظه کرده گذشته. فقط تعداد اندکی از نسل بعد نهزت بشارتی نینوا رو به خاطر داشتند. آشکارا مردم نینوا توبه خود را شکسته بودند چون 60 سال از موعظه یونس گذشته بود که آشوریها بر پادشاهی شمال اسرائیل غلبه کردند. آشوریا با ظلم وس ناپذیر و بیرهمانه به حمله و قلبی و به بردگی گرفتن مردم دنیای اون روز اقدام کردند. آشوریها وقتی پیروز شدند و مردم رو به اسیری گرفتن تبدیل به امپراتوری بزرگ جهان شدند و دست به ظلم و وحشیگری بیسابقه ای زدند. 150 سال بعد از موعظه یونس، 60 سال بعد از سقوط پادشاهی شمال و پایتختش سامره، خدا به این نبی کوچک ناحوم رویایی داد. رویا مربوط به شهر نینوا بود. نینوا شهر بزرگی بود در اون دوران نینوا به عنوان عروس شهرهای جهان شناخته میشد در رویای ناحوم خدا گفت شهر نینوا سقوط خواهد کرد ناحوم رویایی رو که خدا به او داده بود موعظه کرد رویای نبوتی ناحوم مربوط به سقوط نینوا بود که در سه باب کوده شهر داده شده در باب یک، مجازات نینوا اعلام شده در باب دو، مجازات نینوا شهر داده شده در باب سه از مجازات نینوا دفاع شده. امروز ما در شروع درسمون رویای ناحوم در مورد سقوط نینوا رو خوندیم. 23 سال بعد از اینکه ناحوم رویای خودش رو موعظه کرد، شهر بزرگ نینوا سقوط کرد. وقتی ناحوم رویاش رو موعظه کرد، مردم رویای او رو به تمسخر گرفتند و فکر کردند شهر بزرگ نینوا هرگز نمیتونه سقوط کنه. شهر نینوا بر روی دو رودخانه بنا شده بود. تنها راه سقوط نینوا این میتونست باشه که یکی از رودخانه ها مسیرش رو به سوی شهر عوض کنه. حالا نبوت ناحوم بسیار مشخص هست. ناحوم میگه که یکی از رودخانه ها خواهد کرد و باعث خرابی دیوار شهر خواهد شد. دشمن از شکاف دیوار وارد خواهد شد و بر تمامی شهر غلبه خواهد کرد. بیست سال بعد از این موعظه و نبوت ناهوم عملا این اتفاق افتاد و نبوت ناحوم با تمام جزئیاتش تحقق یافت. وقتی سعی می‌کنیم دیدگاهی از ناحوم نبی پیدا کنیم، می‌فهمیم که اطلاعات کمی در مورد او داریم. ما به خوبی می‌دونیم که او در چه دوره‌ای زندگی می‌کرده، زیرا او به سقوط تیبیس اشاره میکنه که در 663 قبل از میلاد میزیسته. ما می‌دونیم که نینوا در سال 670 قبل از میلاد سقوط کرده و از این رو محققان دوره زندگی ناحوم نبی رو درست بین این دو واقعه یا حدود 630 قبل از میلاد میدونن و این نشون میده که او با انبیاای مانند اشعیا معاصر بوده که واقعه به اثارت رفتن بابل رو پیشگویی کرده بودند. باز متوجه میشیم که ناحوم در دوره حکمرانی حزقیای پادشاه زندگی میکرده. دو احتمال در مورد محل زندگی او وجود داره. الگوش که در کتاب مقدس اشاره شده مکان کوچکی نزدیک نینوا بوده بعضی بعضیها بر این باورند که القوش شهر زادگاه او بوده و آرامگاه او در اونجا قرار داره. اگرچه در شمال جلیل شهری به نام کفرناهوم وجود داره و در زبانی که انجیل مرقس به اون زبان نوشته شده شهر کفرناهوم عملا به معنی روستای ناهوم هست. بسیاری بر این باورند که ناهوم نبی بنیانگذار اون شهر کوچک در کنار دریای جلیل بوده که به نام او کفرناحوم نامگذاری شده این شهر همون جایی بود که عیسی پنج نفر از شاگردانش را از اونجا انتخاب کرد کفرناحوم شهر برگزیده عیسی بود البته عیسی اهل ناصره بود اما به خاطر بی‌ایمانی اونها عیسی شهر کفرناحوم کنار دریای جلیل را به عنوان شهر خودش انتخاب کرد بنا به گفته مرقس عیسی در واقع یک خانه در کفرناحوم داشت در انجیل مرقس ای هست که اینطور میگه. سپس به کفرناحوم آمدند. هنگامی که به خانه آمدند، عیسی از شاگردان پرسید. و این نشون میده که خانه عیسی در کفرناحوم بوده. برخی بر این باورند که خانه عیسی در کفرناحوم همون جایی هست که مرد مفلوجی رو از بالای سقف به پایین فرستادند. کفرناحوم مقر فرماندهی عیسی در نیمه اول خدمتش بود. جایی نزدیک جلیل در شمال اسرائیل که عیسی شاگردانش رو انتخاب کرد و بسیاری از تعالیم و شفاهاش قبل از اینکه که به اورشلیم بره و رنج بکشه و بمیره در اونجا انجام شد. وقتی به پیام ناحوم تمرکز میکنیم، اولین کاری که باید بکنید اینه که قدری اطلاعات در مورد خود شهر نینوا داشته باشید. حفاری های باستانشناسی به ما میگن که نبوت های ناهوم نبی چیزی فراتر از یک نبوت حیرت انگیز در مورد سقوط این شهر بزرگ بوده. باستانشناسان به ما میگن وقتی ما نبوت ناهم در مورد سقوط نینوا رو میخونیم که 23 سال بعد از نبوتش واقع شد، در واقع برگی از تاریخ رو میخونیم. وقتی انبیا رو بررسی میکردیم، من اشاره کردم که در مورد سقوط چهار شهر صحبت خواهیم کرد. قوم خدا یک پادشاهی در شمال داشتن و یک پادشاهی در جنوب. پادشاهی شمال یک پایتخت داشت که شهر سامره بود و کتابهای نبوتی در مورد سقوط سامره صحبت میکنند. سامره توسط آشوری ها 60 سال بعد از مععزه یونس در نینوا سقوط کرد. قوم خدا پادشاهی هم در جنوب داشتند. پادشاهی یهودا که پایتخت اون اورشلیم بود. بسیاری از کتابهای نبوتی بر سقوط اورشلیم و به دنبال اون به اسارت بابل اشاره کردند. در کتابهای نبوتی دو شهر دیگری که بر سقوط اونها اشاره شده، شهرهای دشمنان قوم خدا هستند. پایتخت ها شهر بابل بود. بابل توسط مادها و پارسیان سقوط کرد. سقوط بابل رو در کتاب دانیال خوندیم. به هر حال آشوریها بدترین دشمن پادشاهی شمال و جنوب بودند. یادتونه که آشوریها بر پادشاهی شمال غلبه کردند و بلافاصله بعد از غلبه بر شمال، اونها رو به جنوب آوردند و به سمت یهودا رفتند و بر چهل و شش شهر حساردار غلبه کردند. دیویست هزار نفر رو به اسیری بردن و تا به دروازه های اورشلیم رفتن اینجا بود که اشعیا اون لحظه باشکوه رو نبوت میکنه به خاطر نبوت موجزاسای اشعیا آشوری ها از دروازه های اورشلیم بازگشتند وقتی کتاب اشعیا رو بررسی میکردیم اگر اشعیا این نبوت رو نکرده بود هر دو پادشاهی شمال و جنوب توسط آشوری ها سقوط میکرد آشوری ها بدترین دشمنان اونها بودند سقوط شهر نینوا به عنوان پایتخت آشور از اهمیت زیادی برخوردار هست زیرا همونطور که می پایتخت بدترین دشمن قوم خدا هست. کلمه ناحوم به معنی پر از آسایش هست. معنی اسم این نبی آرامش هست. پیام ناهوم هم پیام تسلی هست. حالا شاید بپرسید چطور پیغامی پر از مجازات و تاریکی و آتش و سلفور میتونه پیام آرام بخشی باشه؟ یه لحظه به این فکر کنید. تصور کنید که شما یک یهودی بودید که در 1940 زندگی می کردید و میدونستید که هیتلر در حال غلبه بر کل اروپا هست تصور کنید که شما می دونستید هر وقت هیتلر بر شهری که شما به عنوان یهودی در آن سکونت داشتید غلبه کنه شما را به اردوگاه های مرگ آشئز خواهند فرستاد جایی که سوزانده خواهید شد تصور کنید که دقیقا زمانی رسیده که ارتش آلمان داره نزدیک شهر یا روستای شما میشه و حالا اگر شما اون خبر رو میشنیدید که برلین و رایش سوم سقوط کرده و تبدیل به خاکستر شده آیا اون خبر مسرت بخشی برای شما نمی بود آیا اون یه پیام آرامش برای شما نبود به عنوان یک یهودی اگر میشنیدید سیستمی که سعی کرد شما و تمامی بستگانتون رو به سوزون مغلوب شده آیا این مایه آرامش شما نبود از این نظر هست که پیام ناهوم پیام تسلی دهنده برای یهودا، اون پادشاهی کوچک در جنوب هست. خبر خوش ناحوم این بود که نینوا سقوط خواهد کرد. وقتی ناحوم پیغامش رو موعظه کرد، هیچ نشانی از سقوط نینوا نبود. پس پیغام ناحوم نبوتی بود که یهودیان با ایمان پذیرفتند. به هر پیغام او خبر خوشی بود که یهودیان در اوج درماندگی میخواستند باور کنند. پیغامی که ناحوم برای قوم خدا موعظه کرد لزومی نداره در مورد آشوریان نگران باشید. اونها دیگه به دروازه های اورشلیم باز نخواهند گشت. اونها هرگز دوباره به سرزمین شما هجوم نخواهند آورد. آشوریان مجازات خواهند شد و نینوا سقوط خواهد کرد. ناحوم سقوط نینوا رو در باب دو به طور برجسته به تصویر میکشه. وقتی باب دوم کتاب ناحوم رو میخونید میتونید عملا سقوط نینوا رو مجسم کنید. ناحوم زره ارتش دشمن و لباس‌های اونها رو به تصویر کشیده و بازتا به نور خورشید رو بر روی سپرهای اونها شرط داده. ناحوم این ویرانی رو به وضوح به تصویر کشیده و شما میتونید تقریبا صدای فریاد و سر صدای جنگ رو بشنوید. وقتی ناهم خبر مسرت بخش سقوط نینوا رو برای قوم یهودا معایزه میکنه، او عملاً معنی نام خودش پر از آرامش رو اینجا کاملاً تحقق میبخشه آگاهی از شرایط و زمینه تاریخی این نبی و شهر بزرگ نینوا میتونه این کتاب رو برخلاف تصور ادعی به کتابی هیجان تبدیل کنه که یکی از بزرگترین موعظه‌های انبیا در عهد قدیم رو به ما ارائه میده کاربرد عملی شخصی این نبوت کوچیک چیه میخوام دو کاربرد بهتون بدم قبل از هر چیز میتونیم به کلام خدا اعتماد کنیم نبوت باز هم ثابت میکنه که کلام خدا قابل اعتماده چون که تحقق پیدا میکنه بنابراین وقتی خدا وعده ای میده مبنی بر این که اگر ما به گناهانمون اعتراف کنیم خدا امینه و تمامی گناهان ما رو میبخشه و ما رو از تمام اعمال اشتباهمون پاک میکنه میتونیم به این وعده اعتماد کنیم وقتی یونس برای آشوری ها موعظه کرد اونها اعتراف کردند و اون نسل نجات پیدا کرد اما وقتی نسل بعدی آمد و راه های گناهالود رو ادامه داد ناحوم داوری بر اونها رو معهزه کرد این ما رو به کاربرد دوم میرسونه کتاب مقدس میگه مزد گناه موت است اگر در گناه زندگی کنید و خودتون رو گول بزنید و فکر کنید که خدا نمیبینه و اهمیت نمیده پاداش گناه مرک هست ما این رو در نبوت ناحوم میبینیم اما آیاتی درحت جدید هست که در ادامه از فیض خدا صحبت میکنه رومیان 6:23 میگه مزد گناه موت است این خبر بدیه خبر خوشی نیست اما هدیه خدا حیات ابدی توسط خداوند ما عیسی مسیح است تا حالا هدیه حیات ابدی توسط خداوند عیسی مسیح رو دریافت کردید او مزد گناه شما را پرداخت تا شما بتونید هدیه او رو دریافت کنید اگر نکردید امروز اون رو دریافت کنید کتاب ناحوم رو میتونیم به این ترتیب عنوان بندی کنیم. باب یک اعلام مجازات نینوا، باب دو شرح مجازات نینوا، باب سه دفاع از مجازات نینوا. وقتی به باب یک کتاب ناحوم میرسید و این اعلان رو میشنوید که نینوا سقوط خواهد کرد، اولین چیزی که باید بر اون تمرکز کنید خود شهر نینوا هست. وقتی دانیال رو مطالعه میکردیم، ما شهر بابل رو توصیف کردیم که دانیال در اونجا خدمت و زندگی میکرد. حالا به توصیف محققین از شهر نینوا گوش کنید. چون اون به ما کمک میکنه پیغام ناهم رو به خوبی درک کنیم که تسلی برای قوم خدا بود. در ایام نبوت نینوا عروس شهرهای دنیا بود. شهری قدرتمند و بیش از حد تصور ددمنش، پایتخت جنگندگانی که از غارت دیگر اقوام ساخته شده بود. ثروت بیپایانی از اقصای زمین به خزانه اون واریس شده بود. ناهوم اون رو به غار شیران دررندهی تشبیه کرده که با خون ملت ها تغذیه شده. نینوا حدود 40 کیلومتر طول و 18 کیلومتر عرض داشت. اون با پنج دیوار و سه خندق محافظت می شد که توسط هزاران هزار اسیر خارجی ساخته شده بود. یونس اشاره کرده که 120 هزار کودک در آنجا بوده. این نشون میده که جمعیتی حدود یک میلیون و برخی معتقدند دو میلیون داشته دیوارها بخش درونی نینوا رو به خوبی محافظت می کردن. حدود پنج کیلومتر طول و دو کیلومتر عرض دیوارها بود که در محل اتصال دو رودخانه ساخته شده بودند این دیوارها۶ متر ارتفاع داشتند و در حوزه ای 13 کیلومتری کیلومری اونقدر عریز بودند که چهار پهلو به پهلو میتونستند روی اونها حرکت کنند در اوج قدرت نینوا و در شرف نابودی ناگهانی اون، ناحوم با این نبوت ظاهر میشه که از طرف برخی از نینوائیان آهنگ مرگ یا فریاد دادخواهی مردم خوانده شده. این جزئیات دیدگاهی تاریخی از شهر نینوا رو میده. همونطور که قبلا هم اشاره کردم، سقوط شهر نینوا خبر خوشی برای قوم خدا در پادشاهی جنوب یهودا بود. ناهوم پیغامش رو خطاب به پادشاهی جنوب میده و به اونها میگه که دیگه لازم نیست نگران هجوم آشوری‌ها و ترس از اونها باشید. ملاحظه کنید ناهوم چطور میگه ای یهودا لازم نیست که نگران این باشید. پیغام برای یهودا این بود که به خاطر نبوت ناحوم اونها از دست آشوریان نجات پیدا کردند. پیام ناحوم همینطور ختاب خطاب به پادشاه آشور هم هست. مثل همه انبیا ناحوم هم بسیار بیپرده صحبت میکنه. ناحوم موعظه میکنه خدا پایان و حکومت فلاکتبار شما رو اعلام کرده چون شما غرق در گناه هستید وقتی ناحوم مجازات نینوا رو در باب سوم اعلام میکنه دلایل زیادی رو عنوان میکنه که چرا خدا غضبش رو بر اون شهر خواهد ریخت مثل اقوام ساکن سرزمین وعده که جنگهای برانداز علیه اونها اعمال شد مردم ساکن نینوا هم به طرز وصف ناپذیری ظالم و گناهکار بودند باستانشناسان وحشیگری اونها رو تایید میکنن وقتی خدا فرمان جنگهای برانداز رو علیه اقوام ساکنه سرزمین کنعان صادر کرد در تصنیخون خوندیم که اون به خاطر گناهان بی اندازه اونها بود چنان بود که گویی گناهان اونها جامی بود که لبریز میشد و خدا نمیتونست دیگه اون رو تحمل کنه بنابراین خدا دستور جنگهای برانداز رو صادر کرد همین در مورد آشوریان هم صدق میکنه اینجا شرحی از یک محقق رو در مورد سبوعیت و شرارت و ظلم آشوری ها بینیم. سیاست آشوری ها این بود که اقوام مغلوب رو به سرزمین های دیگر منتقل کنند تا حس میهم پرستی رو در اونها هم بشکنند و اونها رو تبدیل به اهداف آسان تری بکنند. آشوری ها جنگجویان بزرگی بودند. اکثر اقوام اون موقع اقوام قارتگری بودند اما آشوری ها به نظر میرسه که از همه اونها بدتر هستند. اونها کشور خودشون رو با غارت دیگر اقوام می ساختن و دائما در حال ظلم بودند اسرا رو زنده زنده پوس میکندند یا دست و پا و گوش و بینی اونها رو میبریدند یا چشمان اونها رو در می آوردند یا زبونشون رو میکندند و از کشته ها پشته می ساختن. تمامی این چیزها وحشت رو در دل دشمنان اونها مینداخت آشوریها مردمی بی نهایت ظالم بودند در آیات دو تا هشت باب یک ناحوم شما به علاوه مجازات و سقوط نینوا متوجه موضوع دیگری هم می شوید. در واقع مطالعه نبوت ناحوم مطالعه شخصیت خدا هم هست. شخصیت خدا چیه؟ آیا خدا احساساتیه؟ اگر خدا احساساتیه آیا خدا این قابلیت رو داره که بیش از یک احساس داشته باشه؟ در فرهنگ امروزی ما مایل هستیم که روی رفتارهای خاص خدا مثل محبت تمرکز کنیم که شخصیت خدا رو ترسیم کنیم ما این واقعیت رو که خدا محبته دوست داریم ما دوست داریم این واقعیت رو بشنویم چون که اگر خدا خدای محبته میتونیم مطمئن بشیم که او با ما مهربون خواهد بود پس ما واقعا او رو دوست داریم وقتی ما در مورد غضب خدا میشنویم غالبا خیلی ناراحت میشیم وقتی در مورد عدالت، قدوسیت و داوری خدا میشنویم و اینکه چطور خدا در نهایت نمیتونه بی ادالتی و نادرستی و گناه رو تحمل کنه، ما معمولاً چنین این خدایی رو دوست نداریم. اما کتاب مقدس خدایی رو به ما نشون میده که ترکیب احساسات او چیزی مثل رنگین کمان هست. شخصیت خدا رنگهای مختلفی داره، نه تنها یکی. بنابرای گفته کتاب مقدس خدا خدای محبته. او قادره که تیفهای مختلفی از احساس رو داشته باشه، نه تنها محبت بلکه چیزهای دیگری مثل غضب ناحوم خدا را به عنوان پدری مهربان ترسیم میکنه. ناحوم موعظه میکنه که خدا نیکوست. او به ما توصیه میکنه که وقتی مشکلات میاد به طرف خدا بریم چون او تنها کسیه که میدونه مشکلات کی میاد. ناحوم موعظه میکنه که خدا پدری مهربونه و کسانی که او را میشناسند میشناسه. اما این تنها جنبه شخصیت خدا نیست. ناحوم به ما میگه به عنوان داوری عادل و قدوس خدا در مورد کسانی که دوستشون داره غیور هست او از کسانی که محبوبان او را آزار بدن انتقام می گیره او دشمنان محبوبانش رو در غذب خودش نابود میکنه خشم یا غذب او مانند آتشه و وقتی غذب خدا برانگیخته میشه قدرت اون غیر قابل توصیفه. وقتی غذب خدا به این مرحله برسه دیگه بر نمیگرده ناحوم قدرت خدا رو به توفانهای سهمناک مثل گردبادها و زلزله تشبیه می‌کنه. میکنه. در باب یک میتونید این موضوع رو هم متوجه بشید. شخصیت خدا پیغامی هست که باید در نبوت ناحوم دنبالش بگردید. شخصیت خدا چیه؟ در باب دو مجازات و سقوط نینوا شرط داده شده. همونطور که گفتم ناهوم به وضوح این رو توضیح داده. ملکه برهنه و اوریان شده و در قل و زنجیر به اصارت میره سربازان فرار میکنند مردم پر از ترس و وحشت شدند زانوها می لرزند قلبها با وحشت می تپه. مردم وحشت زده رنگ پریده و لرزان هستند بعد در باب سه این کتاب نبوتی ناحوم دلیل و توجیه مجازات نینوا نینوارو برای ما بازگو میکنه ناحوم میگه چرا خدا نینوا نینوارو نابود کرد ناحوم دلایلی مثل این میاره نینوا شهر خون هست نوا شهری پر از دروغه اون با غارت بنا شده اون خودش رو به دشمنان خدا فروخته اون شهر بیوفا وفا مثل دوشیزه زیبا و افسونگر هست او ملت رو با زیبایی خود افسون میکنه و به اونها یاد میده که خدایان دروغین رو بپرستند او پسته و همونطور که قبلا اشاره کردیم شاه اون بوی تفون میده او میگه سرزمین قوم خدا بعد از حمله تو نابود شد، در اینجا او به یهودا اشاره میکنه که بیش از 200 هزار نفر از قوم یهودا توسط سپاه آشور در موقع حمله به یهودا به اسیری رفتند تو دشمنان خودت رو خرد کردی تا فرزندان و زنان خودت رو غذا بدی احتمالا این دلیل مهمی برای سقوط نینوا است درمانی برای زخم هایت پیدا نمیشود و جراحتهای تو عمیق تر از آن است که شفا یابد همه ی کسانی که از سرنوشت تو باخبر شوند از شادی دست خواهند زد چون کسی را نمیتوان یافت که از ظلم و ستم تو در امان بوده باشد. میتونید همین چیز را در مورد اروپا و آلمان نازی وقتی که هیتلر در قدرت بود فرض کنید. کجا میتونید کسی را پیدا کنید که از رایش سوم متحمل رنج نشده باشه؟ اگه به شرق به طرف روسیه سفر کنید امکان نداره کسی را پیدا کنید که از این نظام متحمل خسارتی نشده باشه امپراتوری آشور هم در زمان خودش یک چنین چیزی بود هر جا که می رفتید، کسانی رو پیدا می کردید که مورد ظلم آشوری ها واقع شده وقتی در این داستان می مجازات نینوا عنوان شده شرح داده شده و توجیه شده سوالی که باید جواب داده بشه اینه آیا در کتاب ناهوم کاربردی شخصی برای من و شما وجود داره؟ آیا این نبوت کوچک چیزی برای گفتن به من و شما داره؟ من فکر می کنم داره. پیغامی که مربوط به ما میشه، حقیقتی در مورد شخصیت خدا هست. نبوت ناهوم در واقع مطالعه قذب خداست. کلمه ابری برای قذب خدا کلمه جالبیه. در عبری برای کلمه قذب کلمه ای هست که معنیش عبور از هست. مثل عبور از رودخانه. چیزی که اون کلمه به ما نشون میده اینه که خدا نیکوست. او خدای محبت و ترجیح میده این خدایی باشه و خدا ترجیح میده خودش رو اینطوری ظاهر کنه اما به هر حال این امکان وجود داره خدایی که قدوس و عادل هست گناه بی ادالتی، نادرستی و ظلم آشوریان رو تا جایی تحمل کنه که از شخصیت خودش به عنوان خدای محبت عبور نکنه تا خدایی عادل و قدوس بشه و قدوسیت و ادالت خودش رو نشون بده وقتی خدا این کار رو میکنه او این عبور از شخصیت خودش رو با نشون دادن غضب خودش آشکار میکنه وقتی خدا از این مرحله عبور از شخصیتش میگذره او متوقف نمیشه تا زمانی که تماماً چیزی رو که باعث خشمش شده از بین ببره بهش اینطور نگاه کنید خدا قوم خودش رو دوست داره فرزندان و قوم خودش که او رو میشناسن دوست داره او پدری مهربانه. وقتی کسی شروع به نابود کردن محبوبان او میکنه میتونه از محبتش صرف نظر کنه و شخصیتش رو تبدیل کنه وقتی این کارو بکنه او از غضب خودش دست بر نمی داره تا اینکه کنندگان محبوبانش رو از بین ببره این تعریفی اجمالی برای غضب خدا هست میتونید به قذب خدا اینطور هم نگاه کنید غضب خدا رفتار دائمی و همیشگی او به خاطر قدوسیتش نسبت به ناپاکان هست. قذب خدا عکس عمل نابود کننده قطعی قدوسیت نسبت به ناپاکی هست. قذب خدا واکنش نابود کننده خدای محبت نسبت به کسانی است که محبوبان او را نابود میکن. من این را شخصا تجربه کردم و هرگز فراموش نخواهم کرد. پدر مهربانی در اداره پلیس بود که، به کلی در هم شکسته بود چون او پدر مهربان و نجیبی بود که یک بیمار روانی به دختر کوچک هفت ساله او تجاوز کرده و او رو کشته بود وقتی مجرم رو به داره پلیس آوردند تمامی پولیس های این ایستگاه مجبور شدن برای آرام کردن این پدر مهربان او رو بگیرند چون که میخواست به مردی که دختر محبوبش رو نابود کرده بود حمله کنه ببینید هیتلر هم این اشتباه را در سال 1940 تکرار کرد او به امریکا نگاه کرد که میگفت خوشا به حال فقیران در روح خوشا به حال فروتنان ببینید اگر نیروهای متحدین رایش سوم رو نابود نکرده بودند امروز هیچ یهودی در روی زمین زنده نبود یهودیان قوم برگزیده خدا هستند یهودیان قوم مورد علاقه خدا هستند خدا یهودیان را دوست داره. اونها به طور برنامه ریزی شده در حال نابود شدن بودند و به جوخه های مرگ سپرده میشدند فکر می کنم داستان هولوکاست درست مثل قلبه آشوری ها و بابلی ها بود. تا اون جایی که به آینده قوم خدا مربوط می شد، این نسل در حال از بین رفتن بود. این مردم مورد محبت خدا بودند. من اعتقاد دارم که در خلال سالهای 1940 خدا یک بار دیگه از شخصیت خودش عبور کرد و قذبش را نسبت به نازی ها و رایش سوم نشون داد و اونها رو نابود کرد. این نظریه و مفهومیه که کتاب ناهوم سعی داره به ما نشون بده. یقیناً خدا خدای محبته تا زمانی که کاسه لبریز بشه. تا زمانی که بیعدالتی، نادرستی و گناه به حدی بزرگ بشه که خدا از شخصیت خودش برگرده و جنبه دیگر شخصیت خودش یعنی غضبش رو نشون بده. کتاب ناهوم به ما نشون میده که غضب نابود کننده خدا میتونه چه شکلی باشه. نبوت ناحوم به ما نشون میده که وقتی خدا از شخصیتش برمیگرده و غضبش رو به کسانی که محبوبان او رو از بین میبرند نشون میده چقدر میتونه وحشتناک باشه در نبوت ناهوم چیزی هست که باید بر اون متمرکز بشید کتاب ناهوم مطالعه شخصیت واقعی خدا هست و به ما ترکیبی از رفتارهای محبت و غضب خدا رو نشون میده که شخصیت خدا رو به تصویر میکشه در ایام نبوت ناحوم نینوا یکی از وسیعترین و قدرتمندترین شهرهای روی زمین بود. آشوریان وقتی بر اسرائیل ظلم کردند مرتکب اشتباه بدی شدند. چون خدا مراقب قوم خودش هست. باب سی ناحوم مربوط به خشم خدا به آشوریان به خاطر زل و قرور و در هم شکستن اسرائیل هست. شهر نینوا باید نابود میشد و عملا همونطور که ناحوم پیشگویی کرده بود اتفاق افتاد. شنوندگان عزیز کلام خدا حقیقته شما میتونید محبت خدا و یا غضب خدا رو تجربه کنید کلام او به ما میگه که خدا محبته و اشتیاق او اینه که همه بیان و محبت او رو تجربه کنند اما کسانی که هدیه او رو رد میکنند قبلا داوری شدند کلام خدا در سه 3.18 میگه کسانی که به او ایمان بیاورند هیچ نو محکومیت و هلاکتی در انتظارشان نیست ولی کسانی که به او ایمان نیارند از هم اکنون محکومن چون به یگان فرزند خدا ایمان نیاوردند عزیزان باز هم میبینیم که پیغامه داوری خدا در لفافه محبت پیچیده شده خدا رو شکر میکنیم که شما به عیسی مسیح ایمان دارین و هدیه محبت اون رو دریافت کردین و متعهدانه کلام او رو با ما مطالعه می کنین ما اینه که محبت او رو با همه درمیون بذارین کلام خدا تصریح کرده که اون نمیخواد هیچ از حلاک بشه بلکه همه به شناخت محبت اون توسط توبه و دریافت هدیه فیض او نائل بشن تا برنامه بعدی امیدوارم که محبت اون و پیروزی ناشی از این محبت رو به فراوانی تجربه کنید